قرآن کریم هدف از خلقت بشر رو بندگی خودش معرفی می کند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون امام صادق در تفسیر دارد که یک تخصیص داده به این عبارت لیعبدون فرموده او لیعرفون بشر خلق نشد مگر اینکه این خلقت زمینه‌ای بشه برای شناخت خالق مفسرین می‌فرمان وقتی سخن از عبودیت و شناخت مطرح میشه قطعاً نمیشه این دو عامل رو به عنوان قایت خلقت معرفی کردین گفت هدف نهایی خلقت اینه بلکه میشه گفتش که اینها اهداف واسطه‌ای بودن در وسط قضیه بودن بلکه یک هدف کلی یک قایت نهایی و عزمایی در قرآن ملاکه که این عبودیت و این شناخت زمینه برای رسوندن انسان به او قایت نهایی و او قایت قایت قربه اون هدف کلیه قرب یا به قول قرآن اند رب نزد پروردگار بودن سرلوهه دعای تمام انبیا صالحین تمام اونهایی که در قرآن از اونها به مصطفا برگزیدگان یاد شده عباد الرحمن عباد مکرم شهدا صدیقین تمام اینایی که خلاصه <تصفح> به تعبیر خودمونی یه سر و گردن از بنی آدم بالاتر بودند تمام اینها سرلوه عدیه این بود که خدایا یه وسیله یه راهی یه طریقی برای ما قرار بده ما به خودت برسیم مقربه به تو و این قربه به پروردگار یا مقام اندیت یک مقامیست که وقتی حاصل شد و حادث شد اگر تمام لذات دنیا رو جمع بکنید کنار هم اینو قرارش بدید در برابر این لذتی که از این مرحله برای انسان حادث میشه هیچ لذتی به پای این لذت نمیرسه لذات داریم در ادعیه امام سجاد سلام الله علیه که حضرت میفرماد اللهم از زقنی حلاوت معرفت عبادتک ببینید هم معرفتو میاره هم عبادت و بندگیره میاره ولی میگه هر دوی اینا برای اینکه به تو برسم چیه؟ چشیدنیه جعلی نیست نمیگه خدای ترسیمش که برای من میگه از ذقنی بچشون به باید بچش آدم حلوای تنتنانیه تا نخوری ندنی و امرم شده که تلاش کنید، اجتهاد کنید، همت هم، داشته باشید تا برسید به این مقام یعنی آدم بیاد بگه خب حالا چون صالحین رسیدن، انبیا رسیدن، اوتاد رسیدن پس ما نمیرسیم به این مقام نه راه رسیدن به این مقام قرب برا من و شمام هست مهم اینه که گیوت بر بکشی و اهلیت تلاش در این مسیر رو برای خودت داشته باشی القاعده باید دنبال وسیله و راه بود هم وسیله میخواد هم راه میخواد مثال عرض میکنم مقصد شما رفتن به حرم حضرت رضا صلی الله علیه خدا دست جمع به قسمت, قسمت همه بکنه قاصد شمایی ای قصد حرم رو کردی عقل میگه اگر میخوای حرکت بکنی باید وسیله داشته بشی پا یه وسیله است ماشین یه وسیله است، قطار یه وسیله است، هواپیما یه وسیله است. ولی علی القاعده و عقلا میگن برای رسیدن به اون مقصد از وسیله انتخاب بکن که بهتر باشه برتر باشه راحتتر برسونته دوم باید پا در یه مسیر راه هم بذاری ممکنه از اینجا بری شیراز از شیراز بری مشهد ولی خب لقمه دور سرت چرخوندی دیرتر به مقصد میرسی طرق دنیایی، راه‌های دنیا برای رسوندن به مقصد ممکنه با تأخیر و تقدم و تأخر باشه چون دنیا محدوده. ولی راه‌های اووری ماوراء ناسوت و عالم خاک که آدم میخواد بهش متصل بشه وقت کمه. ناگهان بانگی بر آمد خاجه سند ندادیم شیشتون که تا خدا خداداری میکنه توی عالم باشیم بگیم خب حالا چون ما مثل خضر قرار جاودانه دری دنیا زندگی بکنیم پس حالا وقت خص برای رسیدن به خدا پنجا سالم طول کشید صد سالم طول کشید میلیاردم طول کشید مشکال نداره نه انبیاش به قاعده این میت و این نه میتون دنبال این بودن زودتر برسن به خدا لذا در مناجات نبوی است بعضیا منسوب به علی ابن حسین میدون ولی این روایت شما بررسی کردم دیدم از پیغمبره پیغمبرم دعا میکنه اللهم من احبک خدایا اللهم رزقنی من احبک خدایا روزیم بکن اونایی که تو دوست داری منم دوست داشته باشم تصحیح کنم اللهم رزقنی حب من احبک شاهد عرضم می آخریشه و حب کل عمل یوسلونی اله قربک هر کاری که تو رو زودتر به خدا میرسونه خدای من اون دوست دارم و روزین بکن روزین بکن اون کارایی که تو رو منو زودتر به تو متصل میکنه وصلم به تو میکنه اون رو روزین بکن من اینو خیلی دوست دارم پیغمبرش هم داره طلب میکنه وقت نیست پس وسیله وسیله برتر باشد راه هم کوتاهترینش باشه که تو راه کوتاه هم معرفت هست هم چالش کمتره بار بیشتره نتیجه بیشتر یک کمی فشار رو آدم چیه؟ هست باز من یه مثال دنیایی میزنم میخوا برسه به زیارت عربین امام حسین ها میتونه پرواز بگیره نجف اشرف پیاده بشه با یه دونه ماشین در بست داره تو فصل گرم سالم اگه باشه قشنگ با پذیرایی به قول شما جوون ها وی قشنگ برسه مزجر حسینی هم زیارت بکنه یا اون درک کرد و تمام شد متصلون الا حسین ولی وقتی میاد درسته راه کوتاه نیست یک کمی اگه دقت بکنه دو روز میاد با پای برهنه میدوه میره پاش زخم میشه سختیه رو میکشه ولی تو همین مسیر باربش دارن میدن طریق طریق برتره طریق طریق افضله دنبال او طریق افضل با دادن باشه برای قربه بپرورده و وقتی هم اتصال داد آدم رسید بهش دیگه دل ازش کندن سخته تنها عادت ممدوحه که آدم به قرب خدا عادت بکنه ثانیه‌ای نمیتونه دور ازش باشه شعیب نبی پدرزن موسی چهل سال گریه میکرد این زیر چشش دیگه زخم شده ندای الهی رسید بابا اگه به خاطر عشق به بهشت و شوق به جنته به عزت و جلالم بهشتم مال تو اگه ترس از جهنمه آتیشم رو به حرام کردم اینقدر گریه نکن خطاب کرد خدایا تو میدانی نه به خاطر شوق به بهشتت نه ترس از جهنمت گریه نمیکنم چه کار بکنم محبتت و نزدیکی به تو با گردن من شعب با قلب من شعب گره خورده این گره ها رو با کن نمیتونم نبینمت ولستو ولا عراک نمیتونم دست خودم نیست برسه به اون مقام دوری نمی خب اقا این مقدمه رو گفتیم. راه چیه؟ راهو معین قرآن در سوره مبارکه کهف آخر آیه صد بعد قول انما انا بشر مثلكم یوها الی یعنما الهکم واحد میگه فمن کان یرجو لقاء ربهی هر کسی آرزوش خدا رو زیارت کنه به خدا رو ملاقات کنه به خدا برسه دوتا کار فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت رب بهی یک باید عمل صالح انجام بده دو موحد باش توحید این دوتا وسیله و راهی یک آدم و به خدا میرسونه خب آقا کار که سختتر شد و ما عمل و صالح عمل صالح چیه؟ ای آقایون عامه نابرادریاتون خدا به حق امام رضا بی برادرتون بکنه آن با مفسرهاشون هم مثل خلفاشون عباطل بافن تو تفسیراشون می میگن بهترین عمل صالح اینه که آدم اهل نماز باشه روزه باشه فرائز یک بسته گت و گنده خوشگلی جلو من شما میذارن میگن تا انجام بده عباداتتو بکن قرآن بخون ذکرم بگو خدا ما با کلام امام صادق میم ردش میکنیم میگیم خیلی شما شکر زیادی خوردین صرف ای واجبات فرائز ده شای نمیارزه نمازی که ختم به دلا راست کردن باشه آدم جهنمیم میکنه سؤال دلیل داری برای حرفت؟ بله شسته یک هجری محرمش یوم آشورا سی هزار نفر جلوی حقیقت نماز وایسادن یک نفر اگه تو تاریخ دارید رو بکنید که اووریا اهل نماز نبودن من فردا حرف معوض میکنه زودتر از حسین ابن علی صف جماعت بستن کنار نماز واجباشون انقدر اهل عبادت و مستحبات بودن که وقتی حمید ابن مسلم میگه من در خیمه های اینا قدم میزدم رو پیشانی های اینها ترا اثر رحبانی یهفی وجوههم تو صورت های اینا تو پیشونی های اینا کسفنات الابل مثل کنده زانه شطور که چجور پیره بسته اونجوری اومده بود بالا خب با اون نماز اونم بگی هزا عمل و صالح رسون به خدا اه. چرا از سطحی نگر چرا نباید عمق داشته باشه کار <تصفح> چارده قرن گذاشته داری جلو چش خود تو میبینید اون ملعون حوزیفی سر نماز مغرب و عشاش حدث عسقر ازش صادر شد گو منتظر رو دقایقاً وایسید برام تجدید وضو بکنم ملت مثل باز اقفش وایستادن تا آقا اومد سر مهراب وایساد بعد گو الله اکبر اینا گفتن الله اکبر خب این نماز هزا عمل و ساله اینکه که مقرب آدم به خدا نمیکنه ببخشید تا چای خلام آدم نمیرسونه چرا ابلها آدم نگاه بکنه لا یشرک به عبادت رب به احدایی که میگی با لا اله الله به خدا میرسونی به المعتلی چون صبح آشورا رو سینه پسر پیغمبر حقیقت قرآن نشستن با منطق همه قرآن و لا اله الا اللهی که میگید آدمو به خدا میرسونه سر بریدند شف زدن مرحبن لقتل الحسین سر آورد بالا گوه لا اله الا الله همم تکبیر گفته ای عمل صالحه ای توحیده یعنی دین بدون تربیت ای دین بدون مربی الان چه جسارتی تکفیری ها دارن توی شام مات میکنن من این دهه سوم وقتی نثابات بودم یه کلیپی برای من آوردن تا دو روز به حضرت زهران نمیسم غذا بخورم نشون میداد توی یه شهر حلب یا حمص بود نمیدونم یک زنی حامل پیران مشکی تنش بود سربند یا حسین بسته بود از در خانه آمد بیرون تکفیری رحم اینو نشانه گرفت افتاد زمین اومد بالا سرش شکم و شکافت این مولود رأسش داغون شده بود بچه و در سر او تیری که زده آوردش بالا گوه لا اله الا الله قد قربت الالله و رسول با این کار دارم به خدا و رسولش نزدیک میشه اشهدوان لا اله الا الله گوه این دردیر دوانه میکنه در تفسیر قومی امام صادق سلام الله علیه از حضرت سؤال کردن سواله عبد الله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام الله الله و از امام پرسیدن آقا این عمل صالح و این توحیدی که اینجا اومده میگه راه رسیدن به خداست شما اینو بگید ببینیم چیه خلاصش حقیقتش چیه بنازم به امام صادق حضرت فرمودن العمل الصالح معرفه للائمه عمل صالح شناخت امام زمانت وقت نمازت نماز میشه حجت حج میشه نمیری حج دانشجوی برگردی بگی صدا حذیفی خوشگلتر از نماز مسجد جمکران بود لنگ نمیزنی تو اعتقادات پاکار امام زمانت وایسا دین به میده به خدا میرسونت دومیش زیباتره فرمود ولا یشرک بعبادت رب هی عهدا التسلیم ال علی لا اله الا الله لا اله الا الله میخوای یاد بگیری بیفتی به خاک پای علی لعنت میکنه اونی که افتاد جلوش میگه اقل بچش اینه که میخوای لا اله الا یاد بگیری تسلیم منطق من باش جلو ولایت من زانو عدب بزن اگه علی ساره بونه بلد شطور رحمت کجا بخواه میبره در خونه خدا دیگه هم حرض نمیپری گیجم نمیزنی تو دنیا عمل صالح معرفت به ائمه توحید تسلیم به بلایت خب شد وسیله برتر آقا راه کوتاهترم سراغ داری که همه اینا رو بیاره تو دل خودش آره هست آیه نازل شد به پیغمبر یا ای الذین آمنوا تقوا و ابتعوا الیه وسیله خدا میگه مؤمن متقی هر کسی میایی در خونه ما وسیله بیار یه چیزی بیار مهر استاندارد داشته باشه نداشته باشه رد نمیدم ایمان و تقوا خدا رحمت کنه استاد عمر ما مجتهدی میگه ای ایمان و تقوا را گم کنیه <laughs> و الا ویزای بی اعتباره، شکل ویزا رو داره اسم داره مسمانه نداره، چون خیلی ها دایی ایمان دارن خیلی ها دایی تقبا و نماز شب دارن ولی همین نماز شبه بردش بسید جهنم آیه نازر شد حدیث در تفسیر برهانه در در تفسیر برهان هست و یکی از تفاسیل ذهن ما پیرمرشدندی که پای در ذهن ما صلوات بفرستید الله وما صل محمد و آل محمد تفسیر بیان سعادت است تو این دو تا تفسیر روایت مفصل آمده آیه نازل شد پیغمبر اسلام با آیه را تلاوت کردن امیرالمومنین آمدن خونه با حضرت صدیق فرمودن فاطمه جان پدرت در شأن تو فرمود که تو آلمهی به ماکان و یکون و به ما هوکان و لم یکون بگو تو تفسیر که امرو آیه بریم من از صدیق سر ادب و پایین انداختن و عرضه داشتن یا عبدالحسن خدا در شأن شما فرموده و ما اندهو علم و کتاب سینه شما بطن بطن آیات وحر و مستدرکه من هیام میکنم از جواب دادم شما بفرمایید. امیرالمومنین فرمودن فاطمیجان اینی که میگم حمله بر خود ستایی من نیست او ببی فرمودن نمیدانم نم که حقیقتیه. امیرالمومنین قسم خورد فرمود و الله آن الله الاکبر او وسیله برتر خدا رو زمین ولایت منه. دریه این خاتم عمیق وارد حجره نب فاطمی شد. بعد سلام به اهل منزل فرمودن فاطمه جان اونی که علی در تبیین ای آیه به فرمود صدق علیان علی راست گفت امضا داد پیغمبر. حالا فرمونده های کل قبای خلقت توی حجر جمعن یه وقت ابی عبدالله قریب به چهار سال سن یا کمتری میداد از درون حیات اومد تو حجر نشست روزانو امیر المؤمن. امیرال یه دست نوازشی پسر حضرت کشید دیدید باباها عادت دارن بچهشون وقتی به توب آمن میشنید میگیره کم فشار میده بعد میبوسه امیرال همه حرکت با سید و شهده که لب بر لب های حسین ابن علی گذاشت قد فرمودن فاطمه یا فاطمه اعلمی بدان ولا حب و ولدیل حسین افول منی من در نسخه بدل داره افضل من ولایتی خیلی حرف گنده ای ها یکی محبت پسرمو داشته باشه از ولایت منم جلوتر زده نه اینکه که این شعن امیر رو بیاره پایین نه این فضیلت برای امیر المومنی مدال افتخار سینه یه که یه پسری مثل حسین داره بعد رسول الله تصدیقیه صادر کرد فرمودن علی جان فاتمه بدانید آگاه باشید ازا اراد الله به عبد خیرا اگه خدا اراده بکنه بنده ای رو عاقبت به خیر بخواد بکنه آدم عاقبت به خیر مقربه به خدا هست یا نیست قذف فی قلبهی حب الحسین و حب زیارته خدا محبت امام حسین رو میتابونه فرمود جعله چرا فرق بین جعل و قذفه وقتی میگید جعله یعنی این الان بیرونه اومد تو دست من اینقدر رو پوشون مجعول یعنی محدود ولی قذف یعنی تابیدن الان اینجا رو تاریک کنید یه نورفکن تا او اتاق بذارید تابش نور شعاعش همه جا رو نورانی میکنه خب به امام حسین آقایون تابشیه جعلی بعدم اینم من شدیدن مخالفم باش همینجه هم رو منبرا گفتم این که میگن آقا محب امام حسین میره خطا میکنه معرفت نداره دروغ میگن این محب امام حسین نیست دزده حب حسینه سارقه و الا مقدمه محبت معرفت تا بابات نشناسی بهش نمیگی چه دوست داره و سمره حب و معرفت تاعته محبه امام حسین که تحت شعاع نور حب الحسینی قرار گرفت قطعا در به معرفت به نقطه اعلی رسیده من اهل تاعه اح و اهل تاعه اهل اح القربن این طلبگیش بود کوچه بازاریش همین آقا امام حسین محبتش ای اورزه رو تو عالم داره ورق خلقت تو برگردونه حج کجم باشی تو یه لحظه اتصالش و آی نوریشو پیدا بکنی برت میگردونه چون مظهر ارحمل راحمین خداست شب آن سید عزیز الله مشتهد از بازار تهران داشت رد میشد بره خونش دیر نمه نمی هم برف می اومد یک جلو راشو گرفت گفت سید میگن شب آشوراست کو بلی گفتی درسته میگن اگه بعد بال پشیف و ازای حسین ابن احلی عشق چشمات بیاد پایین گناهات قد کف دریان باشه پاک میشه گفتم آره روایت داریم از امام رزا اگه از چشمت به اندازه یه قطر بال پشم بیاد پایین قفرال الله جمعی از زنوب کذب دل بحر اگه به اندازه کف دریان باشه خدای قدرتو داده تو عشق امام ها سید عشقم جلوه محبت به سید و شاهده <تصفيق> گفت بس ما یه روزه بخونی کم گریه کنی بشت گفت برو بابا جان حالت خرابه باشه بعدن قد رو در بر گذاشت بیخ گردن آقا گفت نخونی شارگت زدم گفت درگذر از ما گفت نخونی میزنم اتا گو باش اما ما خود پسن روزه خوندن منبر میخواد گفت کمر ما که نشکسته دستاشو گذاشت زمین میگه من با خودم گفتم یه سه تا سلام از ناهیه بدم بخونم یه زودتر شرش کم بشی گو روزه میخونی عربی میخونی ترجمه کو برام بفهمم چی میگیا باشه میگه تا گفتم السلام علی الشیب الخضیب سلام به آقایی که محاسنش بخونه رگهاش خذاب شد ای شروع کرد هق هق گریه کرد گفتم سلام از علی الخد تریم سلام به او آقای که گونش به خاک بیابون کشیده شد شروع کرد گریه کرد تا گفتم از سلام علی من دفن اهل القرآن سلام به او آقای که یه مش عرب بیابونی دفنش کردن این هق حق، حقش بالا گرفت یک دفن من زد زمین نگاه کردم دیدم الان نه هزار سال از دنیا رفت کشون کشون آوردمش تو مسجد با خادم قسل کفن تموم شد یه وقت به خودم اومدم خدا فردای اونه آشورا چه جوری به این مردم بگم به نماز یادم حاضر بشین یا آشورا هدیه کردم به روح امام حسین گفتم یا عبدالله دست من خارج خودت آقایی کن از خستگی تو مسجد خوابم برد دمدمای صبح خواب دیدم حرم سید حرم قروق خوددام با لباسهای سفید ایستادن گفتم چه خمره به ایس کنار الان آقا تشیف فرما میشن میخوان اعمال زائرین و ازاداراشون رو سبت و زبت کنن به طرفت العین دیدم از درون زریه متحر حضرت بیرون آمد دون دون اومدم جلو تا سلام کردم امام روشو رو برگردند عرض کردم عزیز فاطمه پنجاه سال نوکری در این خونه رو کردم به این محاسن سفیدم رحم بکن و جواب سلام رو بده امام یه نگاهی کرد فرمودن آسد عزیز الله چرا با مهمان مایی برخورد و کردی گفتم آقا مهمان شما کیه فرمود چه حقی داشتی بدن گریه کنه ما رو رو زمین بکشی ببری گفتم آقا این لوتی عرق خور و از خراب گرفتار فرمود تو از کجا می و قبلی که بیاد روزه ما رو بشنوه دهنش آب کشیده بود بعدش هم به واسطه محبت ما تطهیر شد. بیا نگاه بکن سید تو ملکوت آسمان ها ملائکه به مقام لوتی قبطه میخورند. دیگه نزد ملکوتیان به او میگن لوتی صالح نه لوتی طالح. اگه فردا هیچکی به این بدن نماز نخون خودم میخونم. گفت صبح بلند شدیم مردم از سلات از سلات پاشید بیاید اهدی نگی اهد من من منو خادم بودیم تا اومدم تکبیر اول بگم یه وقتی دیدم همون پیکری که تو عالم خواب و نور بود جلوم تو تکبین خاک ایستاده برگشت یه نگاهی به کرد کنگو برگرد پشت سرت ببین به که برگشتم دیگه این حجاب دیوارها ها جلو چشم رفت کنار تا جایی که چشم کار میکرد ملک ایستاده بود فرمود این فوج ملائکه رو میبینی اومدن به بدن نماز بگه گریه کن ما نماز بخونه این همون مصنق عینی حب و ولدی الله حسین افضل من ولایتی خدا بخواد یکی را آقابت خیر بکنه میبرتش زیر چتر ولایت و محبت امام حسین این راه کتاها را از دست ندید نذارید هر اوباش بی سرپایی بیاد مسادق محکمه به تعبیر قرآن شعائر محکمه حسینی را یه وقت نیان زیر دست خالی بکنن زیر پاتو خالی بکنن بگن اینم کپانش تموم شده مردونه بگو کپان رحم مادرت تموم شده این وساط تمومی نداره اگه خدا تموم شد اینم تموم میشه محرزم تموم شد اگه عمری بود فردا باب به یه تو باز میکنم کنارش باشی چی میبینی سایه محبتش رو سرت میاد میبردت پیش خدا کنارش باشی چی کار از کی میخونی آقا شک شک. اینم بگم اول الحمدلله جلساتون با هم داریم جوونو باش بازی نکنه. محبت جد ما تو رو به امام حسین بازی نکنید نذارینش گل دیوار ازش بیکشید بالا من منبری بعضی وقتای محبت عبی عبدالله رو سر حالی میذارمش کنار دیوار ازش میکشم بالا تا دوتو تیب الله بشنم یه وقت با لجن گناه حریمش نشکن اینقدر آغاز که بلد چی کار بکنه گفتم ورق خلقت تبرمی او تقدیر حتمیت و را تغییر میده یه ارزش تو حب بل حسین هست و الله هست دو سرو دیگه ایک کاروان میرسه مدینه آقا علیه ابن الحسین سلام علیه بشیر رو فراخان کرد فرمودن بشیر جزده بابات اهل شعر و شاعری بود مدیح سرایی برای خاندان ما میکرد تو همچیزی بلدی؟ بله یبن رسول الله. فرمودی زن و بچه ازاداری نکردن اینا خیلی آسیب دیدن نه خیلی عذیت شدن دستور داد خیمه‌ها رو سه روز بیرون مدینه زدم فرمود بگیدی مردم مدینه بیان تسلیحت به این زن و بچه‌ها یه سیاب عصمت پیرن مشکی لباس مشکی کرد تنش بشیر یه علم شکسته گذاشت رو کولش تو مرد دو چیز تو عربا برای مرد دو چیز خیلی سنگینه یعنی نشانه ازاشه یکی وقتی سرش برهنه است یکی وقتی که نشانه جنگ آوریش علمشه علمش که بشکنه یعنی همه چیزم از دست رفته یه علمش رو کسته رو کولش گذاشت شروع کرد حرف زدن یا اهل یسر بلا مقام لکم قتلل حسین فدم ای, ای مردم مدینه تو مدینه نمونید حسین تو خون خودش دست و فا زد و کشت روزه خ... الحمدلله روحیه رو دارید بازم تأکید بتون میکنم تو مصیبت امام حسین مثل امام صادق داد بزنید فقط ای داد زدن و سرخ و شحقه مال زمان روز آشورانیست هر وقت یاد مسیبت امام حسین داد بزن بلند بلند گریه بکن این شهقت قلب مادر ما رو آروم میکنه. یا احل یسری بلا مقاملک و مبهار خسلال ای مردم مدینه دیگه مدینه لبونید آقای این شهر چون خون خودش دست و بازد و کشدش و و جسم و ملوها به کربلا مزر نجوم شما آخری بگم حق ادا کنید نگفت جسم و ملحو بکر بلا مومیون صدا زد بدن حسین تو کر بلا تکه تکه جد مزردج به بدنی میگن سالم رو زمین رو و جسم و ملو و شربلا مزر جور و رأسو و حلال قناس یدار پاشید بساتتون رو جمع تو منزل بالان یا رو زن و بچه دوان دوار, دوار اومدن جلو خیمه آی خواتین حرم در میان این مردم عبدالله جعفر هم مجل و امام اب یبن رسول الله آجر کلال مصیبت عوی آقا جهان خدا سبنت بده تو بین خیم من خدران خانمم زینب و نبی آی بمیرم ب نو یه وقت پردر و والا بدالله به من آماده روز می میره به خونم گریه کنینه. اخ بمیرم صدا زد خانمم چرا پیر شدی چرا گی سوالت سفیده یه نگاه بهش گر صدا زد حق داری زینب تو نجنازی عبدالله نبودی تو زمین کرمل جلو و چجمم هجده عزیزم و سر بریدم عبدالله خودم دیدم بدن داداشم زیر صومه ستوران را. داره میگه ناله ای زن و مرد مدنی بلند شد عبدالله لابودی تو خراب جام دادن نان و خرما برون پرتاب کردن تو مجلس یزین منو و رو به حکم کنیز خطاب کردن دولار عبودی جلو چشم من خوهر قبلیده نانجیب انقد با چوب خیزران به لب و دندان برادرم نباد همه عرفاش و زهر با عزت و جلال اومد قبر بر یه عبارتی گفت دوست و دشمن به حالت گریه گر صدا زد یا جدا یادم هر وقت میخواستم کنار قبرت بیام عباس و حسین اون و جعفر دورمو میگرفتن کسی منو لبینه اما یا در دروازه شام مجبور شدم با سینم سورتم و بپرجدم یا جدا اگه نامحنم اینجا نبود بد میگفتم با بدن دختر چما